سلام بر دوستان جان، یاران همراه، عزیزان و علاقمندان به ادبیات کوهن پارسی به خصوص قصه‌های شیرین و پنداموز شاهنامه فردوسی با چهارمین برنامه از قصه‌های شاهنامه ادامه داستان زحاک ماردوش در خدمت شما عزیزان هستیم این قسمت داستان فریدون نام داره زهاک ستمگر پس از دیدن اون خواب ناگوار شب و روز نداشت و هر لحظه به فکر دستگیری آبتین و فرزند اون فریدون بود سربازای زهاک به چند گروه تقسیم شده بودند و هر گروه به یک منطقه از سرزمین ایران فرستاده شدند اونا به شهرهای بزرگ دهکده های کوچیک و حتی روستاهای های دور افتاده هم سر میزدند تا شاید بتونن نشانی از آبتین و فریدون پیدا کنم روزا میگذشت و زهاک بیصبرانه در انتظار دستگیری آبتین و فریدون بود اما سربازاش هیچ اثری از این دوتا پیدا نکردند زحاک روزاشو به تلخی میگذرند و شبها تا به صبح کابوس میدید اما بشنوید از آبتین آبتین کشاورز فقیری بود که به همراه همسر مهربونش فرانک در دهکدهی دور افتادم و زیبا زندگی میکرد اونا به تازگی صاحب یه پذر شده بودند که اسم اون رو فریدون گذاشتند فرانک و آبتین با عشق و علاقه زیادی به فرزندشون محبت میکردند و اون رو میپروروندند و براش آرزوهای زیادی داشتند مثل همه پدر و مادرها یک روز صبح مثل همیشه که آپتین با بدرقه همسر مهربونش فرانک از خانه خارج شد تا به سوی مزرعهش بره درست در همون لحظه سربازای زحاک وارد دهکده شدند و به جستجو برای یافتن آبتین و فرزند بهش فریدون پرداختند فریدون به محض اینکه وارد مزرعه شد کار روزانهش رو شروع کرد روز گرمی بود و آفتاب به شدت میتابید. بعد از چند ساعت کار برای رفع خستگی زیر سایه درختی کنار مزرعه نشست که ناگهان سربازای زحاک را از دور دید. او بی اتناب سربازا دوباره بلند شد و مشغول به کار شد سربازا که از جست و جو شده بودند و به زحمت قدم بر آروم آروم کنار مزرعه رعی آبتین رسیدند یکی از سربازا با دیدن اون ازش پرسید ببینم ای مرد جوان نام تو چیه؟ آبتین بیچار و بیخبر از همه جا سرشو بلند کرد و گفت من آبتین هستم سربازا با شنیدن نامش حسابی خوشحال شدند و اونو نزد فرمانده خودشون بردم فرمانده با دیدن آبتین نگاهی به ظاهر روستایی و فقیرانش انداخت و گفت نام واقعی تو چیه؟ آبتین عرق پیشونیشو پاک کرد و جواب داد به سربازاتونم گفتم قربان اسم من آپتینه فرمانده از جاش بلند شد و همینطوری که دور آپتین قدم میزد گفت ببینم تو همسر و فرزندی هم داری؟ آبتین گفت با همسر و پسرم تو دهکده بالایی زندگی میکنیم فرمانده با شنیدن یعنی جواب آبتین کنجکاوتر شد و پرسید نام پسرت چیه؟ آبتین از همه جا بی گفت خداوند مهربون به تازگی یه فرزند به ما داده که ما نام اون رو فریدون گذاشتیم فرمانده که دیگه مطمئن شده بود آبتین همون کسیه که دنبالش میگردند به سرعت دستور قتل آبتین رو بیچاره رو داد و سربازاش رو به سراغ فرانک و فریدون فرستاد سربازا پس از اینکه آبتین رو کشتند به سوی خونش روونه شدند تا همسر و پسرش رو هم از بین ببرند. در همین هنگام فرانک که جان فریدون شده بود به همراه فریدون در حال رفتن به سمت مزرعه بود که با تعجب از اهالی ده شنید که سربازار زحاک همسرش رو دستفیر کردند و اونو به قطر رسوندند فرانک با غم و اندوه زیاد قصد بازگشت به خونه داشت که یکی از اهالی با عجله به طرفش اومد و گفت فرانک با نوزادت از اینجا برو سربازای زحاک توی دهکده دارن دنبال تو فریدون میگردن اونا میخوان شما رو هم به سابتین از بین ببرند فرانک با شنیدن این خبر نوزادش رو محکم در آغوش کشید و با سرعت به سوی دشتی در دور دستهای دهکده به راه افتاد نفس نفس زنون و با تمام قدرتش قدم بر داشت و تنها به فکر نجات فرزنده دلبندش بود غم از دست دادن آبتین یک لحظه آرومش نمیگذاشت و و های گرمش آروم و بی صدا گونه های زیباش رو خیس می کرد. پس از مدتی راه پیمایی به یک دشت وسیع و زیبا رسید. خستگی همونش رو بریده بود. بی اختیار روی زمین نشست تا نفسی تازه کنه. به کودک کوچیکش چشم دوخت و دید که اون با اشتیاق به جایی خیره شده. با تعجب جهت نگاه کودک رو دنبال کرد و ناگهان چشمش به گاوی زیبا و بینظیر افتاد. اون گاو هیچ شباهتی به هیچ کدوم از گاوهایی که تا اون روز فرانک دیده بود نداشت گاوی بود بسیار بزرگ و قشنگ که هر تارموی بدنش به یک رنگ بود فرانک تماشا تماشای گاو شده بود که صدای آرومی از پشت سرش شنید یک نفر گفت دخترم اینجا چیکار کار میکنی؟ اسمت چیه؟ فرانک سرشو برگردوند به سمت صدا صدا متعلق به پیرمردی بود که در همون نزدیکی خونه داشت و از این گاف نگهداری میکرد فرانک با دیدن اون مطمئن شد که این مرد قابل اعتماده جواب داد ای مرد دانا من زنی تنهام که همسرم به دست سربازای ستمگر زحاک کشته شده و خودمو تنها فرزندم در حال فرار از دست سربازا هستیم، هیچ سرپناه و خوراکی هم نداریم. پیرمرد نگاهی به نوزاد زیبای فرانک انداخت و گفت: شما میتونید امشب رو مهمون من باشین فرانک دوباره با خوشحالی فریدون رو در آغوش گرفت و به همراه پیرمرد به راه افتاد. فرانک در راه از پیرمرد در مورد گاف سال کرد و پیرمرد هم گفت: نام این گاوشیرد برمایه است فرانک به فکر فرو رفت و همینطور که قدم برمیداشت به پیرمرد گفت ای مرد اگر من از تو خواهشی داشته باشم اون را قبول می‌کنی؟ پیرمرد جواب داد اگر در توانم باشه حتما مانعی نداره بگو فرانک گفت سربازای زحاک بست کشتن منو بچه‌مو دارن اگه اونو به تو بسپارم و هر ماه هم یک مزدی برای نگهداریش برات بیارم اونو پیش خودت نگه میداری؟ پیرمرد با تعجه گفت اما اما من فرانک با عجله کلام پیرمرد رو قطع کرد و گفت شما گفتید که این گاو شیرده است کودکم میتونه از شیر اون گاو تغذیه کنه اون بچه بیازاریه قبول میکنی پیرمرد قبول کرد و فرانک پس از استراحتی کوتاه و خوردن غذای مختصر فریدون رو به پیرمرد سپرد و به دهکده برگشت اون به تنهایی کار کشاورزی همسرش رو ادامه میداد و هر ما مزدی رو برای پیرمرد میبود روزها و ماهها از پی هم می اومدن و میرفتند فریدون آروم آروم داشت بزرگ میشد تا اینکه به سه سالگی رسید در اون روزا مردمی که در دشت رفت و آمد داشتند برمایه رو که گاو بینزیری بود میدیدند و همه جا صحبتش رو میکردند شهرت و آوازه برمایه دهان به دهان میگشت و کم کم از دهکده به گوش مردم شهر رسید، تا اینکه بالاخره یه روز از روزها خبر وجود چنین گاو کم نزیدی به گوش زهها کسه تمگر هم رسید. زهها که هنوز در پی پیدا کردن فریدون بود و گفته های درباره برمای رو به خاطر داشت و میدونست که، فریدون از شیر برمایه تغذیه میکنه و بزرگ میشه بیدرنگ دستور نابودی برمایه و فریدون رو داد سربازای زحاک با سرعت به سمت اون دشت زیبا حرکت کردند و پس از طی مسافتی طولانی وارد ای که نزدیک دشت بود شدند خیلی زود خبر ورود سربازا تو دهکده پیچید و به گوش فرانک هم رسید اونکه که دلنگرون سرنوشت پسرش فریدون بود با شتاب خودش رو به دشت رسوند و پس از قدردانی و تشکر از زحمات پیرمرد کودکش رو در آغوش گرفت و به سوی کوه دماوند براه افتاد کوه دماوند در شاهنامه و در اساتیر ایران نقش بسیار پررنگ و مهم می داره و در داستانهای بعدی بیشتر با این کوه آشنا میشیم و ارتباطش رو با داستان های شاهنامه بیشتر درک میکنیم. بریدیم به داستان خودمون. فرانک پس از رسیدن به پای کوه فریدون رو به پشت خودش بست و با شجاعت زیادی از کوه بالا رفت. وقتی که به نزدیکی غله کوه رسید خستگی و تشنگی بهش فشار آورد و بیرمق در گوشه نشست تا نفسی تازه کنه در همون حال فردی روحانی که در معبدی بالای کوه دماوند به تنهایی زندگی میکرد در حال گذر از اونجا بود اون با دیدن حال و روز فرانک به سمتش رفت و پرسید ای زن چرا اینقدر راشفته و پریشونی؟ از کجا میایی؟ فرانک تمام ماجرای خودش کشت شدن همسرش و اجبارش به فرار رو برای مرد روحانی تعریف کرد و از اون درخواست کرد که اگر میتونی برای مدتی از فریدون مراقبت کن تا اون از شر سربازای زها در امان باشه مرد روحانی که دلش برای فرانک و اون په کودک سوخت تصمیم گرفت که اون رو به معبد ببره و چون پدری مهربون مشغول تربیتش بشه فرانک با امید به لطف و محبت خداوند کودکش رو به مرد روحانی سپرد و بار دیگه به دهکده برگشت و به کشاورزی مشغول شد وقتی که به دهکده رسید از اهالی شنید که سربازای زهاک بابی رحمی برمایه رو کشتند و پس از اینکه در پیدا کردن فریدون ناکام شدند، به سوی پایه تخت زحاک برگشتند فرانک با خاطری آسوده به کار و تلاش برای فراهم کردن وسائل رفاه کودکش مشغول کار شد و شب و روز را رو با فکر پسر کوچیکش سپری میکرد. شانزده سال از این ماجرا گذشت. فریدون در کوه دماوند پرورش یافت و تحت تعلیمات اون مرد روحانی به جوانی ورزیده و با ایمان تبدیل شد اون سوارکاری و تیراندازی رو به خوبی آموخت و در شکار نظیر نداشت روزی از روزها فریدون از مرد روحانی اجازه گرفت تا به دیدار مادرش بره از کوه پایین اومد و دشت سرسبز رو پشت سر گذاشت و به سوی دهکده براه افتاد فرانک با دیدن فریدون اونو در آغوش کشید و اشک شوق از دیدهاش جاری شد فریدون دستهای مادرش رو بوسید و گفت در تمام این سالها با دلتنگی خیلی زیادی دور از شما زندگی کردم اما حالا دیگه میخوام همه چیز رو درباره خودم و نیاکانم بدونم فرانک آهی کشید و جواب داد میخوای بدونی اصل و تو از کجاست و پدرت کیه و چرا این همه سال تو رو دور از خودم نگه داشتم فریدون سرش رو پایین انداخت و ساکت مود فرانک دست های پسر جوون رو در میان دست های پیر و چروکیده خودش گرفت و به اون نگاه کرد و گفت این حق تویی که بدونی پس خوب گوش کن تا برات بگم ماجرا از اونجا شروع شد که زهاک ستمگر خوابی ناگوار دید اون تو خواب دید که جوونی نیرومند و قوی با گرزی که سر اون شبیه سر گاو بوده اونو نابود میکنه و از پای در میاره خوابگزاراش در تعبیر اون خواب بهش میگن که جوونی به نام فریدون که پدرش آبتین نام داشته یک روزی زحاک رو میکشه از اون روز به بعد سربازای زحاک همه جای این سرزمین رو برای یافتن تو و پدرت جستجو کردند و بالاخره روزی از روزها پدرت رو که مردی مظلوم و زحمتکش اما دانا بود پیدا کردند و به قتل رسوندند اونا در پی یافتن تو بودن اما من با هر سختی که بود در این سالها تو از چشم سربازای زحاک پنهون نگه داشتم. اون ستمگرا حتی گاوی رو که تو کودکی تو از شیر اون تغذیه میکردی کشتن بله پسرم زحاک ستمگری بی رحم و خونخواره که کاری جز آزار و اذیت مردم بیگناه انجام نمیده فریدون تمام حرفای مادرش رو گوش میکنه و به حال پدر بیگناهش که توسط سربازای زحاک کشته شده بودند افسوس میخوره و با خودش عهد میبنده که تا انتقام خونه پدرش رو از زحاک ستمگر نگیره لحظه آروم نشینه خب دوستای عزیزم بخش چهارم هم تمام شد قصه زاده شدن فریدون و بزرگ شدنش ادامه این داستان رو در برنامه های بعدی با هم پی می گیری. تا برنامه دیگر و بخشی دیگر از قصه زهاک ماردوش از داستان های زیبای شاهنامه حکیم بزرگوار توز. فردوسی گرامی همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم روز روزگارتون بکام